در میان قوقای زندگی ندایی از عمق فطرتم مرا بی‌امان ندامی داد که مشنو به هیچ آوازی گوش مده از میان بی شما رنگ های رنگ‌های فریب این دنیا چشم به هیچ رنگی جز آبی پاک آسمان ندوختم و شرق و غرب عالم را گشتم و بر سر راه گذر همه تاریخ خایستادم به همه مذهب‌ها همه مکتب‌ها همه قهرمانان اندیشمندان پیشوایان و جهان هرچه داشت و زمان هرچه ساخت و تاریخ هرچه بافت همه را دیدم و سنجیدم و شناختم و تمام کردم و رد شدم و دستهایم خالی دامانم خالی و همچنان آواره چون باد در صحرا. جهان برایم دیگر هیچ نداشت و من دلیر مقرور و بینیاز اما نه از دلیری و غرور و استقنا که از نداشتن از نخواستن زندگی کوچکتر از آن بود که مرا برنجاند و زشتتر از آن که دلم آن بلرزد هستی توهیتر از آن که به دست آوردنی مرا زبون سازد و من توهیده دستتر از آن که از دست دادنی مرا بترساند همچون کسی که شتابان از شهری دور میشود و دم آدم شهر کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر می گردد و دورتر و بیگانه و بعد سیاهی موهوم و مجهول و بعد سایهای کم و بعد نقطهای و بالاخره هیچ شهری که دیگر برای او نیست زندگی و همه دیوارها و خانهها و راهها و کشاکش‌ها و کوشش‌ها و ثروتا و حیوندها و لذتها و همه در برابرم رنگ میباخت و دور میشد و می میشد و من به شتاب میگریختم و میگریختم تا رسیدم به اقلیم بیکرانه تنهایی جزیره خلوت بسته خیش اگر تاریخ را بکشیم آنگاه مطلق پیش می آید و من گذشته را کشتم و به مطلق رسیدم دیوارهای فردیت من پیاپی فرو ریختن و من رها گشته از طبیعت رها گشته از تاریخ رها گشته از دیگران رها گشته از حسار خیشتن روح ای شدم آواره در قربت این کبیری که در آن هیچ سقفی بر آن سایه نداشت هیچ نشانی مرا نمیخواند خوند که تا شامگاهان در دامن ساکت و غمگین مغرب همچنان پرواز می و بیزار از آرامش کور گیاهان و جانبرانی که در آغوش طبیعت کنار صفره مردارهای افن رام و آسوده خفته اند و حراسان از بی بیپناه و بیسرنوشت بر فراز این سرزمینی که هیچ جای گشتنی نداشت پرواز می بیابان حیرت بر سر راه آن که از خیش عزم سفر کرده است، هلناکترین مرحله است. آنجا که به قفا می نگریم، سواد شهری که در آن زندگی می کردیم، در قباری دور گم شده است و به پیش رو که می نگریم جز شعله اشتیاقی که در هر گام دل را به حریفی دیگر می کشد و جز حاله انتظاری که در هر نگاه دورتر می شود و گنگتر، هیچ نیست و چه سخت و طولانی بود گذر بروادی حیرت مرگی که یک عمر طول کشید قربت وطنم بود و آفتاب پدرم کبیر آتشخیز مادرم با سرنگشتان نوازشگر باران عشق رویدم و با گریه ابرهای اندوه بار سیراب نوشیدم و در خاک پر برکت و حاصل خیز درد ریشه بستم و با رنج پروردم و در انتظار قد کشیدم تنهایی خانه دلم شد و انزبا بسترش و یس گهوارش و آرزوی بی امید پیر قصه و شیر شیر پستانهای دایش و بی کسی آغوش آرام بخشش و اتش آب خوشگوارش و افسانه شیرینی کامش و خیال حکایتگر معشوقش و اسطور تاریخش و قصه خاطر ساز آیندهش و کلمات نوازشگران خوب و مهربانش و قلم جبریل آورش و دفتر میادگه محرمش و شب نقلستان خلوت نالیدنش و دوست داشتن آموزگارش و ایمان مکتبش و قربانی امتحانش و قربت وطنش و یعص امیدش و جدایی سرود هر سحرش و فرار زمزمه هر روزش و برد هر نیم شبش و رهایی مذهبش و صخره و محتاب میادگهش و بهشت اوپا سر آرزویش آزادی بدن از زندان آجر و آهک و چوب و خاک زندانی را غرق شادی و توفیق می کند و چگونه میتوان شادی و توفیق را در جان کسی که از اسارت در طبیعت در تاریخ در جامعه و در خیشتن رها می شود با کلمات این کلماتی که همه ابزار سخن گفتن اسیران این زندان هاست واسط کرد چگونه میتوان به اطفالی که هنوز در زندان خفه و خونین جنین خون میخورند و شبها و روزها را می گذرانند. گفت که معجزه تولد چیست عظمت دنیا چیست شکوه آسمان خورشید ماه ستاره زیبایی صبح و سخن گفتن مغرب گل و باران و نسیم و جویبار و کوه و دریا و دشت و عطر و رنگ و شعر و عشق و ایمان و مهر و هرچه در ماورا و جنین عالم غیب دنیای جنین میگذرد چیست آنکه چشم بسته و گوش بسته و اندیش بسته و دل بسته تمام بودنش مکیدن است و آن هم مکیدن خون رحم چه میداند که پس از مردن در جنین چه زیستنی است و چه میداند که خوشگواری آبهای زلال و تگرگی چشم ساران سبز در کام تشنه ای از کبیر اتشناک آمده چیست؟ من دیگر یک گل وحشین نبودم که در خاک و آب و هوای سرزمینم بیخیشتن روییده باشم من دیگر باطلاقی نبودم که جوی بارهای تاریخ که از سرزمینهای دور دست سرچشمه میگیرند و از شهرها میگذرند و رب و اطلال و دمن قبایل را میرو و میآورند آلوده و رنگ برگشته و بویناک در من ریزند. من دیگر آینه‌ای نبودم که جامعه هم تصویر خیش را بیک و کاس در سینم نقش کند و من دیگر ابزار کور و جامد دست خیشتن موروس خود نبودم که هر چه خواهد کنم. و هرچه خواهد باشم و هیچ آگاه نباشم که او نیستم و او من نیست طبیعت را شناختم و من طبیعت ساخته را خورد کردم تاریخ را شناختم و من تاریخ پربرده را برهم زدم جامعه را و خلق و خوی و شیوه ی کار جامعه را شناختم و من جامعه زاد را هم ریختم. و خیشتن را شناختم و در اعماق مجهولش خود را یافتم و آوای ضعیفش را که می نالیدم شنیدم و زندانش را شکستم و آزادش کردم و رها شدم رهای رها شدم و دیدم که منم بید خالت هیچکس منم یک اوپا جزیری از چهارسو سو محدود به خیشتن جهان و هرچه در آن است زیر پایم، و هیچ کس در کنارم، و هیچ کس بر بالای سرم. چه سلطنت پرشکوه خدایی، یک نیهیلیسم مطلق. نیچه راستین به نیروی دانشها از این قلعه های سخت و استوار بیخیشی، از زنجیر این جبرهای های ناخداگاهی رها شدم، و رسیدم به دشت بی کرانه آزادی، از هر سو کشیده تا افقهای دلخواه رفته تا سرزمینهای بیکس دشتی هموار چگونه؟ بدان گونه که بخواهم به چه رنگ؟ بدان رنگ که بزنم کجا؟ آنجا که اراده کنم کدام سو؟ بدان سو که رو کنم و من خواستنی مطلق ارادهی رها خالق توانای خویش و معمار دانای جهان چه خوب میگفت بودا انسان نیروانایی رها از گردونه سرساماور کارمای بی حاصل رها از سامسارای رنجالود حیات حیاتی که جز توده ای از رنجها و شبکه از بندها نیست چه راست میگفت حلاج در جبه من جز خدا کسی نیست خدا رهایی مطلق وجودی بیبند بیپیوند آفریدگار خیش و همه آفرینش او که نه معلول است و نه مخلوق و نه فرزند و چه زیباست سخن هگل روح مطلق من مطلق و انسان به میرسد که اراده مطلق میشود روح مطلق در او تحقق میابد ناخداگاهی مطلق می شود و چه عمیق است سخن کیرکیگارد یاسپیرز سارتر بدان گونه که من برگزیدم. من همه ماهیت را که این سه ماهیت ساز انسان بر آینه وجود من نقش کرده بودند به نیروی آگاهی و خواستن زدودم وجودی شدم شسته و لوحی شدم سپید و گلی بی شکل در زیر دستهای آزاد خودم در زیر قلم زرین او او او کیست خودم خود آزادی بخشم خود گارم، پروردگارم آفریدگارم و چه پرشکوه و عزیز و شورانگیز است این سخن خداوند که روح خیش را در من دمیده است مگر روح خداوند نه همین انسان راستگار از این چهار زندان ناخداگاهی است مگر نه این انسان راستگار شبیه خداوند است بنده ای بر گونه خداوند که او خود میخواست کیست مگر نه بنده ای است که هیچ بندی را بر دست ساختن و پای رفتنش ندارد مگر نه هر کسی به ای که خود آفریننده خیشه است به آفریدگار عالم همانند است مگر نه هر کسی به آن اندازه که ساخته ناخودآگاه جبرهای جز خود است، خود نیست. تکه سنگی است، شاخه درختی، جانوری. انسان یک جاندار خداگاه خودساز است و سپس جهان آگاه جهانساز. بنده ای بر انگاره خاجش. من هنگامی پدید می آید که فرد به قول اقبال به خودی می رسد در قبال مرگ و عشق هایدگر یعنی خود را در قبال دیگری وجدان می کند این دیگری مطلق نه خود است هرچه و هر که در ما سوای من است خدا یا خدایان طبیعت ماده همه کائنات و نیز یک فرد دیگر در این خودیابی شگفت، فرد خود را به عنوان یک تز مییابد و در همین حال دیگری را آنتی تز خود یافده است. بقیده من، این آنتی تز در درجات متعالی یافتن توسعه و تعالی مییابد از فرد دیگر به خانواده و جامعه و بشریت و طبیعت و خدا. در این مرحله، خدا دیگر تعیین کننده مطلق و مایشای ماهیت او نیست، سرشت و سرنوشت او را خدا بی حضور وی، بی،, بی آگاهی و خاست و دخالت وی نمی آفریند. خدا دهنده وجود اوست. وجودی که خود مسئول ساختمان خیش است و مأمور اختیار خسائل ذاتی و صفات و ابعاد و حالات و همه رنگ و طرحهای ماهوی خیش. خدا پدری می شود که او را فقط به دنیا انداخته است و سپس نگران اوست لبللوک ایکم احسن و عملا تا چه می کند؟ تا ببیند که چه خواهد شد؟ در اینجا عمل جانشین خدای باستانی می شود انه عمل غیر صالح نیست للانسان الا ما سعا پراکسیس قلم تقدیر آدمی می میگردد سرنوشت یوم ینظر المرء ما قدمت یدا آن امانت که خدا بر زمین و ها و کوه‌ها ارزه کرد و از برداشتنش سرباز زدند و انسان برداشت همین است. نه عشق است و نه معرفت و نه طاعت. مسئولیت ساختن خیش است. کاری که در يد قدرت خداوندی است، انسان خود به دست میگیرد و چه می‌داند که بار این امانت آفریدگاری تا کجا سنگین است؟ سارتر چه عمیق فشار طاقت فرسایان را حس می کند که میگوید دلهوره آور است اما آنچه از این دلهره یا آنگواز در لگزیستانسیالیزم سه میگوید می گوید سطحی کردن و حتی آمیان کردن مسئله است با لحن مجله روزنامه از آن سخن گفتن است روی سخنش هم با خبرنگاران مطبوعات علمی و روشنفکران فلسفی معاب موج نوئی بوده است آنها که فلسفه را همچون اخبار سیاسی از طریق مقالات و مطبوعات و کنفرانس‌ها و مصاحبه‌های رایج فرا میگیرند. می‌گوید انسانی که آزادی انتخاب دارد از آن رو که هیچ ملاک خیر و شری از قبل وجود ندارد و این انتخاب انسان است که ملاک را نیز می‌آفریند بنابراین در لحظه انتخاب که تمامی عمر آدمی از این لحظات ترکیب یافته دست و دلش میلرزد. زیرا خیر در نظر او عملی است که با نیت خیر انجام میدهد و آن عبارت است از حالت درونی و وجدانی انسانی که وقتی دست به کاری میزند دوست دارد که همه مردم نیز چنین کنند و عمل او سرمشق عملی همگان قرار گیرد پس هر فردی با انتخاب خویش یعنی با عمل فردی خود یک قانون کلی یک ملاک اخلاقی و سرمشق عمومی انسانی باز می کند. و با چنین احساسی است که مسئولیت در او پدید میآید و این مسئولیت نه یک مسئولیت شخصی است، بلکه مسئولیت خیر و شر همه انسان هاست و ناچار گاهی دچار این استراب می شود که تصمیمی که میگیرد باید درستترین تصمیم ممکن باشد. چون این تحلیلی از استراب ویژه روح انسانی در این جهان بیش از آنکه درست باشد سودمند است. به مصلحت اجتماع نزدیکتر از تا حقیقت انسان استراب روح بسیار جدیتر و سختتر از دلخوری ناشی از مسئولیت اخلاقی در برابر دیگران است. این استراب ناشی از نفس اختیار است و به خصوص از اینکه نمیدانم چرا اختیار کنم؟ زندانی رنجور هست اما مضطرب نیست. آزادی که به خود واگذار شده است مسئول است. این مسئولیت پیش از آنکه در برابر دیگران باشد در برابر خیش استراباور آور است. به خصوص که آنچه به او واگذار شده است خود او باشد. چگونه بودن او؟ این چشمه جوشان حیرتی هولنگیز و سنگین است. امانت داشتن استرابامیز است. آن هم امانتی که از آن خدا بوده است. از او گرفته شده است. کوها از گرفتنش عباد داشتند. استراب داشتن این امانت سنگین است که به گفته مولانا روح را به شراب می‌کشد. فراموشی، فراموشی، فراموشی، چه نیاز تشنهای حتی دمی احساس نکند، مستی لحظه ای از دلهرهٔ داشتن این امانت آسودن است حراس و دلهرهٔ اختیار است که دل را نیازمند جبری دلخواه میکند عشق زنجیری است که پاهای مسترب انسانی که در طلب آن است بر سر همه راههایی که میتواند رفت آواره مانده است انسان بدوی در دو ناخداگاهی آرام بوده است یکی طبیعت و دیگری ما همچون خرگوشان کوچک شاعر پلیاد فرانسوی غیر از طبیعت جامعه قدیمی یک شخص مستقل است افراد در آن نه خود را که ما را در خود احساس می کردند قبیله ترکیبی از افراد خیش است اوست که حیثیت دارد و وجدان و حتی وجود وجود فرد در روح جمعی، حساس و وجدان جمعی یا کونسیونس کلکتیو حل است فرد حقیقتا وجود ندارد نه قاتل است نه مقتول اگر کسی کشت قبیله قاتل است چنانکه که قبیله مقتول مقتول حقیقی و حقوقی است هر فردی از آن قبیله قاتل حقیقی است و میتواند به جای قاتل واقعی قصاص شود، زیرا هر فردی خود قبیله است. این قانونی بود که اسلام در جامعه قبایلی عرب نسخ کرد. این است آنچه امیل درکیم سوسیالیسم می نامد. تمدن، هرچه در تاریخ پیشتر می آید و تأقل را بیشتر رشد می دهد، فرد تحقق بیشتری می گیرد. اصالت و تفوق روح جمعی ما ضعیف می شود و روح فردی من در آن نمودارتر می شود. جامعه متمدن امروز دیگر نه ترکیبی به هم پیوسته بلکه سازمانی به هم بسته از من هاست. من، هرچه چه میگذرد پیوندهایش را از آن روح مشترک میگسلد و مستقل می شود. منها از درون یکدیگر بیرون میآیند و در کنار یکدیگر قرار میگیرند. همخانه ها همه همسایهها میشوند از روح ما که همه منها را در خود حل و جذب کرده بود جز نامی سیاسی و جز خاطری فرهنگی باقی نمیماند. استقلال خود یک نوع تنهایی است تنهایی با مفهوم وجودی من توم است. درکیم و هالبوواکس هر دو پریشانی و شور بختی و هراسی را که در چهره انسان جدید میخوانیم ان خلأ خلع وحشت زای میدانند که از دوری و جداییها پدید آمده است. در انبوه جمعیت های متراکم و متشکل جامعه های متمدن امروز هر کسی تنهاست مذهب و ملیت و خانواده که افراد جمعیت بزرگ یا کوچک خیش را به هم خیشاوند و با هم مشترک میساخته‌اند ضعیف شدهاند از سوی دیگر استقلال اقتصادی اصالت فردی امنیت جانی و تأمین مالی و نظم دقیق و سنگین کار تخصصی و های رسمی و تکنیکی تفریح و سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت افراد را از یکدیگر بینیاز کرده است و در نتیجه بیگانه و این خلأ و تنهایی و جدایی است که منحنی متساعد خودکشی را در زندگی متمدن امروز توجیه کند و اینکه برخلاف در جامعه های سنتی و مذهبی خودکشی به صورت حادسه های استثنایی و فردی است نه یک پدیده عمومی و اجتماعی آن را تایید می نماید. این است که انسان بدوی در دو دامن گرم و مادرانه طبیعت و جمعیت فارغ از خیش آرام قنوده است بهشت هشت عدن آدم پیش از آن که میوه تلخ بیداری و بینایی را بخورد همینجاست چه رفاه و خوشبختی برخلاف آنچه چه نیم روشن فکران ما میپندارند در صد و نوع مصرف نیست در صد و نوع احساس است